اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللجین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا و آله الطاهرین ما در مباحث گذاشتمون کلام رو تعریف کردیم به ما افاد المستمعه فائدتا تامتن یسه و سکوت و علیها گفتیم کلام اونیه که از مصند و مصند علی تشکیل شده جمله است فائده تام میمیده جوری که متکلم احساس میکنه همه غرض خودش رو رسونده فائدتا تامتن یسه سکوت و علیها بعد ارز کردیم که این کلام با جمله ارتباطش ارتباط عموم خصوص مطلقه یعنی هر کلامی جمله هست اما هر جمله کلام نیست چون جمله اونیه که دارای مصند و مصند علیه به اصناد تا بعد گفتیم اگر شما برید تمام زبان عربی رو زیر و رو کنید کلام رو دو قسم پیدا میکنید کلام خبری کلام انشایی گفتیم کلام خبری اونیه که ما یهتملو الکلام خبری ما یهتملو از صدق اول کذب و لذاته بدونه که نگاه کنیم به که کی گفته قابلیت صدق و کذب داره یعنی میتونه مطابقت با خارج و واقع بکنه بشه سر میتونه مطابقت نکنه بشه کذب اما کلام انشایی اونیه که مالا یحتملا از صدقه اول کسب و احتمال صدق و کسب درش نیست احتمال صدق و کسب درش نیست هم نبین که نیست به خاطر این که به قول خودمون واقع و خارج رو مطابقت میدیم یا نمیدیم نه اصلا به خاطر اینکه که واقع و خارجی نداره که با اون مطابقت بکنه یا نکنه چرا چون کلام انشایی همونطور که انشا به ایجاده از دهان ما که خارج میشه ایجاد میشه اون معنا. یعنی چیزی نبوده که با اون مطابقت بکنه بشه صدق یا مطابقت نکنه بشه که اینو میگن کلام انشایی و اگر یادتون باشه گفتیم. کلام انشایی دو جوره یکی انشای طلبی است که توش طلب هست گفتیم پنج قسمش امده است ما رو اونها بحث میکنیم که کتابمون امر نه استفام تمنی نداد و انشای غیر طلبی داریم که انشای با تلفظ ما ایجاد میشه معنا اما احتمال صدق و هم نداره اما این انشاء توش طلب نیست مثل نظر مثل قصم مثل انشای تعجب مثل انشاء مدح اینها درشون به قول خودمون طلب وجود نداره بعد اومدیم یه مبحثی رو توی اون پاورقی داشتیم گفتیم کلام خبری دو جوره یا جمله اسمیه است یا جمله فعلیه گفتیم جمله اسمیه به اصل وضع اشتلالت بر ثبوت میکنه اما ممکنه با قرائن خارجی مثل مد دلالت بر استمرار سبوتی یا استمرار دوامی بکنه مثل این نکل علا خلقن یعنی همواره و اخلاق عظیبی داری نه این لحظه ای که این جمله گفته شده اما کلامی که جمله فعلیه باشه چیه گفتیم جمله فعلیه به دلیل اون ساختار فعل دلالت بر زمان معین میکنه. پس این جمله فعلیه دلالت بر حدوث حدوث اون مصدر دلالت بر حدوث میکنه در زمان معین، حالا ماضی، حال یا مستقبل. و بعد گفتیم که اینکه دلالت بر حدوث میکنه فقط زمان حدوث رو نشون میده، گذشته حال یا یعنی یه توش استمراری فهمیده نمیشه. اما همین جمله فعلیه که دلالت بر حدوث میکنه، ممکن است با غرینه دلالت بر استمرار حدوثی کنه یا استمرار تجددی بکنه مثل اینکه در معرض مدح باشه درست شد؟ مثل تودب بروشلقل عرض والغرب کف یا مثل یول جل نهار فلیل فل یول جل لیل فل نهار یرز و من یشا که در مورد خداوند بکار میره یعنی همواره خدا چنین بکنه یعنی دست سیف و دوله اون تود اب برو شرقلع ارز والغرب کفوهو اون دست سیف الدوله شرق و غرب این کشور رو همواره داره اداره میکنه گذشته اداره میکرد الان هم میکنه آیا هر لحظه اداره تجدید میشه حودوس پیدا میکنه به خاطر همینم تو بسره دومش گفت ولیس الها یومن انر مجد شاغلو هیچ روزی نیست که این از اون مجد به قول خودمون توهی باشه از این مجد اداره کردن شرق و قرد. پس بنابراین این رو فهمید حالا اون استمرار رو با قرائن به فهمون جمله اسمیه میشه استمرار سوبوتی یعنی یه خط درست شد اخلاق عظیم داره یعنی اخلاق عظیم هست مستمره درست شد مثل طول میمونه طول خطی یه خط ممتده اما استمرار تجددی حدوسی تو این یکی مثل یرز و غمانیشا یولج و لیلف نهار یعنی هر دفعه تکرار میشه نقطه چینه یعنی یه بار یولج دوبار سه بار ه اتفاق میفته این تکرار میشه درست شد استمرار تجددی استمرار حدوسی بعد گفتیم که جمله اسمیه با فعلیه در کلامه بلاغیین با نهاد یه ذره فرق داره اون فرقش هم سر اینجاست که اگر ما جمله ای داشتیم که مبتدا شروع شد ولی خبرش جمله فعلیه بود و تو اون جمله فعلیه زمیر این مبتدا اومده بود و مصنده بود حالا فایل یا نای فایل درست شد مثل زیدون قام اگر چنین شکلی داشتیم این جمله در نزد نحوا چون با مبتدا شروع شده جمله اسمی است ولی در نزد ها این جمله فعلیه به حساب میاد معادل جمله فعلیه است به این مبتداش هم میگن فاعل معنوی میگن این فایل بوده مقدم شده برای دو غرض یک یک حصر دو تخصیص یک حصر دو تخ... چیز یک حسر دو تاکید حالا باید ببینی کدوم یکی از اینا به درد میخورده یعنی تو اون گفتهی که شده آیا قصد تأکید بوده یا قصد مثلا فرض کنید که وقتی اون خانم به حضرت یوسف تهمت زد که این نسبت به من نظر بدی داشته یوسف از خودش دفاع کرد گفت هیه راودتنی ان نفسی هیه راودتنی هیه رو را مقدم کرد هیه راودتنی اینجا حسره یعنی فقط این مراوده داشت این فقط نظر بد داشت من نداشتم نمیخواد تأکید کنه جای تأکید نیست درست شد پس بنابراین در چنین جایی یا برای تأکید مثل اینکه مثلا فرس بر برای تأکید مثلا. شما به من میگه شما تو کلام من شک داری مثل اینکه باور نمی کنی من راست میگم میگم نه انت تست دخل. ببینه انتا تستقه یعنی قطعا تو راست میگی تحکید چون تو گفتی من شک دارم من گفتم نه نه نه تاکید میکنم یقینا تو راست میگی اما اگه سه نفر صحبت کردم خب من به یکیشون گفتم انت تستقه اینجا من هسته یعنی تو فقط درست داری میگه اون دوتا درست نمیگه باید توی جمله بفهمیم کدومه کل مبحث سابق به طور کامل قیاد شد حالا بیایم سر درس بعدمون که عنوان میکنه کلام خبری غرض از او چیست کلام خبری غرض از او چیست ببین القرض من القائل خبر یعنی من الگا ال کلام الخبر القاء یعنی باید. آوردن غرض یعنی غرض متکلم الغرض یعنی غرض المتکلم من القاء الخبر یعنی من القاء الكلام الخبري غرض متکلم از القاء و آوردن و بیان کردن کلام خبری چیست ببینید گوش خوب اینو توی ذهنتون داشته باشید یک مبحث ساده ایه. قراز متکلم از آوردن کلام خبری الان من متکلمم دارم کلام خبری برای شما میگم تعریف میکنم همین توضیحاتی که اول دادم همش کلام خبری بود و ما هم گفتیم یادتون باشه که کلام خبری اصل نسبت به کلام انشایی هم بیشتر از اونه تو استعمال همین که کلام انشایی از رو کلام خبری ساخته میشه قراز از القاع کلام خبری سه تا چیزه ما سه چیز داریم یعنی وقتی که یه متکلم الان من دارم صحبت میکنم یکی از این سه قرض هست دوتا قرزش قرز یک و دو این دوتا اصلیه قرز اصلیه یعنی نیاز به قرینه نداره ما اولی رو نگاه میکنیم ببینیم برای اولی تطبیق میکنه یا نه اگر نکرد میریم سراغ دومی برای دومی تطبیق میکنه یا نه؟ اگر این دوتا تطبیق نکرد میریم سراغ دشت سوم دشت سوم مجازه معانی مجازی کلام خبریه، که یکی دو تا سه تا نیست، اون معانی مجازی شروع میشه. سه، چهار پنج ه همینطور بر تا بعد بعد. این کلام های مجازی با قرینه فهمیده میشه یعنی با قول خودمون معانی مجازی کلام خبری با قرینه فهمیده پس تقسیم کلام خبری به چند دسته شد؟ دو دسته یک حقیقت دو مجاز حقیقتش چند دسته شد؟ دو دسته الف به میخونی. که الفش بیشتر از ب. لذا اول میریم سراغ الف نشد به این دوتا معنا معنای حقیقی کلام خلف بعد اگر حقیقت نشد دیدیم تطبیق نمیکنه میریم سراغ معانی مجازی معانی مجازی چند تا؟ در تا 20 تا، ها هست اونو رو از کجا بفهمیم از کجا اون معانی مجازی رو بفهمیم که برای چیه به واسطه قرائن کلام. اون قرائن رو که در نظر بگیریم میتونیم معنای مجازی رو در کل میگیریم کلام خبری رو برای این قراز گفته به این قرینه حالا اون دوتا معنای حقیقی که یکیش بیشتر است یکیش کمتر یکیش نسبت به اون یکی اصله اون دوتا کلام خبری معنای حقیقی معانی حقیقی حقیقت نیاز به قلید هم نداره ما حملش میکنیم معنای الف که بیشتره معنای به که کمتره این دوتا حقیقی الف رو بهش میگن خبر، الخبر تول الخبر پس قرز از کلام خبری چه شد؟ فائدت الخبر ب رو بهش میگن لازم الفائده لازم الفائدته یعنی لازم فایده خبر و الف لا از مضافه که یعنی لازم فائدت الخبر پس الف فائده الخبر به لازم الفائده این دوتا معنای حقیقی کلام خبری است این دوتا معنای حقیقی کلام خبری است شد نیاز به قرینه نداره خب ما اول که کلام خبری رو شنیدیم ذهنمون میبره روی اون الف میبینه الف صدق نمیکنه کنه میبرتش روی ب میبینه ب هم صدق نمیکنه اینجا دیگه می این کلام خبری بیمعناست اونی دنبال قرینه تو قرینه پیدا میکنه که به چه معنای مجازی آمده اما فائدت الخبر چیست فائدت الخبر چیست هرگاه هرگاه متکلم مخاطب خود را نسبت به مضمون کلام خبری جاهل فرض کند و کلام خبری را برای فایده بردن او از مضمون آن بیان کند قرز فایدت الخبر است. همین الان که من این تعریف رو کردم شماها رو نسبت به فایدت الخبر جاهل فرض کردم که نمیدونید بعد من تعریف رو بیان کردم تا شما بدونید فایده ببرید پس غرض من از این تعریف و کلام خبری که آوردم بگید فایدت بود پس فایدت الخبر اینه متکلم مخاطب خودش رو نسبت به مضمون خبر چیه؟ بگید جاهل فرض میکنه بعد کلام خبری رو به او میگه تا او از کلام خبری بگید سود ببره حالا یه متکلم قوی اونیه که به خود مخاطب رو میبینه حدس درست میزنه یعنی واقعا میفهمه که این اینو نمیدونه؟ شما نمیپرسیم که من نمیام از شما بپرسم که تو میدونی زید استاده یا نمیدونی؟ تو بگی نه من نمیدونم بگم پس بدون زید استاده است به فاعدت در خبر ما این کارو نمی کنیم. کسی بزرگ سوال نمی کنیم بلکه ما در ارتباط خودمون با مخاطب پی به این میبریم که مخاطب نسبت به مضمون کلام خبری من جاهله من بگم تا بفهمه این فایده تل خبر فایده تل خبر حالا نگاه کنید توی متن کتاب دو تا مثال زده یک و دو این قسمت این محور که فایده تول خبر باشه تو کلام خبری از همه بیشتر میگه ولدان نبی صلی الله علیه و آله و علیه وسلم عام پیامبر گرامی اسلام سلام الله و آله و سلم به دنیا آمد در آمول فیل سالی که فیل ها به همراه به مکه حمله کردند و خداوند در فیل هم دیدید در اونها رو با سنگ های سجیل به درک واصل کرد این معجزه در زمان ولادت نبی گرامی اسلام اتفاق افتاد که خودش تاریخ ولادت رو تزمین کرد و اوهی علیه فیسن نلربهین شده به پیامبر اسلام در چهل سالگی و اقامه به مکه تا هر عشرته سنتن و پیامبر سکونت کرده در مکه 13 سال و به مدینه اشرا یعنی اشرا سنوات اشرا سنی ده سالم در مدینه خب ببین اینو وقتی داشته به این گفته احساس کرده که ما اینها رو نسبت به ولادت نبی گرامی اسلام و زمان پیامبری ایشون مدت زمانش و مدت اقامتش نمیدونیم گفته تا ما بفهمیم این میشه فایده تون خبر درست شد میشه فایده خبر ولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم آملفیل و اوحی علیه فی سن ال و اقام ب مکه 38 سنه و به مدینت قشر درست شد حالا نگاه کنی تو پایین توی حاشیه میگه عام الفیل عام الفیل چه سالی بوده وقع على العام الذي قزا فيه ابرهته ملك اليمن مکت ساليه که جنگید ابره پادشاه یمن با مکه یعنی با اهل مکه ثم رجع عنها خائبا بعد شکست خورد و دست خالی از مکه برگشت بعد آن تفشل مرض في جندهی و ما بعد از اینکه منتشر شد تفشا یعنی انتشر المرزو فی جندهی و فیلو مرض در بین لشکریان شد و فیلها مردند و او برگشت این تیکه بسیار حرف است. بلکه اونی که باعث این شد که اینها به درک واصل شدند و خداوند خانه خودش رو حفظ کرد معجزه الهی بود که با سنگریزه های این ها رو بگید به درک واسد حالا اینها عنوان میکنن که مثلا این سنگریزه ها بیماری تاؤون همراه خودشون داشتن اینا آوردن این ها رو وقتی که بر سر این ها فی اینا بیماری تاؤون کدومه اولا تاؤونی که هم فیل رو بکشه انسان رو بکشه که ما نداریم بعد تاؤونی که بیاد تشخیص بده او معبره رو بکشه اما بزرگان مکه بیان فرار کرده بودن بالای کوه. سه اون بالا بودن بعد دیدن اینا همه شدن که اصفن محکول همهشون مثل کاه جویده شده شدن همه با این سنگریزه ها از دنیا رفتن هیچ کدوم نموندن فیل و غیره همه در به شد اومدن پایین تازه جمع کردن چطور این تاون تشخیص میده این مکیه نمیکشه اون اینه که این جمله صحیح از لحاظه چیزی نیست بلکه این موجزه است ما نمیتونیم موجزات رو بیایم به شکلی که میخوایم به قول خودمون انگار میخوان اقلیش کنن میخوان آدیش کنن این نه که بعدا تفشل نه بعد ان بعد ان احلک به سجیل بعد از این که خدا اونها رو با سجیل حلاکت کرد خب این مورد اول مورد دوم نگاه کنید باز فایده تول میگه کان امر ابن عبدالعزیز امر ابن عبدالعزیز دو سال خلافت کرد از سال 99 فکر بومن با سد و یک بین خلافای اوموی هم جز اول خودمون اونهایشون بود که یک مقدار بهتر رفتار کرد عادل ترینشون. نشوند که عادل نبودن این در واقع یک مقدار بهتر از اونها بود حتی فدک رو به امام باغر برگردوند لعنه بر امیر المومنین بالای منابر رو که معافیه گذاشته بود اینها من کرد دوستا کار اینطوری هم که دو سال بیشتر خلافت نکرد میگه قانه عمر ابن عبدالعزیز این عمر ابن عبدالعزیز لا یأخذ من بیت المال شیئا حقوق از بیت المال نمی خوبی کارش و لا یجری الان نفسه من الفیئه دراما و جاری نمی کرد مقرر نمی کرد بر خودش از فیئه یعنی درآمد بیت المال از غنائم بیت المال درهم یک درهم به درهم پول نمی دینار، پول تراز، یه درهم هم بر نمی داشت. که بگیم یک قرون هم بر نمی داشت. خب، در البته نسبت به زهدش به قول خودمون توی مطالب دارن. حالا ما دیگه نمیخوایم خواهیم بگیم, بگیم که عمر ابن عبدالعزیز چون این چیزا یکی از اون نقض شده. خب، اینا وقتی که داشته می گفته کان عمر ابن عبدالعزیز لا و این واسه چی گفتش منم واسه چی توسید دادم واسه فکر کردیم شما عمر ابن عبدالعزیز رو نمیشناسید ما اینا رو بگیم تا شما بشناسید شفاه های پایین نگاه کنید هوه الخلیفت و از و الملک و لعادل عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم الاموی ولی الخلافت سنت ثس ان و ثس این و توبفی اسنت واحدتن درست شد؟ و الماء در شو هم و اخبار و عدله و زهده کثیرتون مشخه خب اینا فهمید الا این دوتا تا چی بود قاعده تن خبر غرض قاعده خبر حالا نگاه کنید توی بحث بحث رو ببینید تدبر المثالین العولین دو تا مثال اولو دقیق کن تجد المتكلم انما یقصد میبینی که متکلم همانا قصد میکنه انیفید المخاطب الحکم اللذی تزمره الخبر فی كل مثال قصد میکنه متکلم افاده کند فایده بده به مخاطب الحکم یعنی مضمون سخن مزمون سخنی رو که کلام خبری در بر گرفته در هر مثال پسش اینه که این مزمون رو شما بفرد و یو سم ماهازالحکم و فایدتالخبر اینوش تو فایدت خبر. میگیم توضیح بده میگه باشی فل متکلم در مثال اول متکلم در مثال اول یوری و انگفید از سامه پسش اینه که فایده بده به سامه ماکان یجهله آنچرا که از نظر او این بهش جاهله من مولد رسول از زمان ولادت رسول خدا و تاریخ الی و زمانی که به پیامبر وحی شده و زمن الی او و اون زمانی که پیامبر سکونت کرده بعد از آنک بعد از رحش شدن به او فی مکت و المدینه اون مقداری که در مکه و مدینه بود. و هوه فیلم سال ثانی اما در مثال دوم متکلم یخبره خبر میده به مخاطب به ما لم یکن یعرفه به چیزی که او شناخت نسبت به او نداره ان از آهای عمر ابن عبدالعزیز چیزی رو داره میگه که شما احساس میکنه شناخت نسبت به او ندارید اون چی بوده؟ اونی که فکر میکنه شما شناخت نسبت به او ندارید داره توضیح میده و اون مزمول کلام چیه؟ به نل افت و زهد فیمال المسلمین این که پاک دست بوده افت و بیمیل بوده زهد داشته در مال مسلمین نسبت به مال مسلمین چشم داشتی نداشته حقوق نمی گرفته و از بیتول مال چیزی بر نمی داشته این شد فائدت خبر فهمیدید سیاد شد نم. اما لازم فائده چیست لازم فائده چیست لازم الفائده هرگاه یادداشت میکنید هرگاه هرگاه متکلم احساس کند مخاطب نسبت به مضمون کلام جاهل نیست و آگاه است جاهل نیست و آگاه است و و این طور فرض کند که این طور فرض کند که او یعنی مخاطب فکر می کند متکلم نسبت به مضمون کلام آگاهی ندارد در این صورت در این صورت کلام خبری را در این صورت کلام خبری را میآورد تا به مخاطب بگوید من میدانم من من متکلم میدانم اینجا اینجا مخاطب از خود کلام بهرهی نمیبره شما میدونه درست ولی لازمه این که لازمه این که من سخنی رو گفتم چیه الان لازمه این که من دارم به شما این مطالب رو درس میدم چیه خب شما داری از اینا استفاده میکنی لازمه این که قطعیه اینه که من اینا رو بلدم من که رادیو نیستم که از صدا پخش کنم بلکه من بلدم رو دارم میگم شما این رو میذارید که من وقتی اینا رو دارم برای شما بیان میکنم پس بنابراین من خودم اینها رو بلدم وقتی شما از اصل اینها استفاده ای نمیبرید درست شد پیم به لازمش میبرید میگه اینکه که میدونست من اینو رو میدونم پس واسه چی گفت پس واسه این گفت که بگه من میدانم فکر میکنم من فکر میکنم اون نمیدونه و گفت تا من بفهمم که او هم میداند حالا مثال بزنم خیلی راحته. این کمتر از او یک. مثل اینکه یه کسی یه بچه یه بچه, یه بچه یه رفته مدرسه دبیرستان درس و آخر ترم با قول خودمون کارنامه بش داده کارنامه رو گرفته دیده که ممراتش خراب شده و رد شده این کارنامه رو گذاشته تو جیبش و خودش قشنگ همه اینا رو خونده گذاشته تو جیبش اومد خونه خب فکرم میکنه که مثلا پدر و مادرش نمیدوند نمیدوند دیگه ولی حالا پدر و مادر به نوعی فهمیدن حالا یا رفتن مدرسه یا مدرسه بهشون اطلاع داده فهمیدن این وقتی این شخص رو میبینن پدره برمیگرده بهش میگه پسر امسال کارنامت اصلا خوب نشده تو ریاضی شدی هشت زمینشناسی شدی هفت زبان شدی شش خود خب اینها رو که داره میگه برای چی میگه برای که اون بفهمه خب اون که خودش اینا رو بگید میدونه خودش هم کارنامه‌اش رفته گوشه جیبش ولی فکر میکردی که پدر نمیدونه حالا که وقتی اینها رو داره بهش میگه یعنی چی یعنی تو از اصل این نمرات و این مطالب سابقه ولی لازمه این که من اینها رو دارم میگم اینی که خودم میدونم پس بفهمم میدانم درست شد این مش لازم الفایده ما کلام خبری که میشنویم اول ذهنمون میره روی خبر اینا رو گفته تا ما بفهمیم بعضی مواقع آه؟ میبینیم نه این مال جاهل فرض نمی کرد عالم فرض می کرد میدونست ما اینا رو میدونیم اینا رو گفت تا ما بفهمیم بلده آه؟ اینا رو گفت تا ما بفهمیم میدونه میشه لازمه فایده این دوتا نیاز به قرینه نداره ما خودمون در محاورات خودمون با همدیگه اینو میفهمیم میفهمیم طرف اینو گفت تا ما یاد بگیریم بفهمیمش یا اینو گفت تا ما بفهمیم بلده میدونه یکی از این دوتا این هر دوش معنای حقیقیست الان توی کتابتون نگاه کنید سه رو مثال سه میگه لقد نه من نوم کلیه و ما کرا. لقد جواب قسم یعنی به خدا قسم مثلاً می‌خوام نهستم نیمه کلیه عمره مبکرو امروز تو از خواب زود بیدار شدی باور کن پسر امروز تو از خواب زود بیدار شدی خب الان حساب کنید مثلا تو کلاس باشه تو کلاس خب یه نفر تو کلاس دهندره کنه هی فمیازه بکشه اینها خب چیه کار خب خوبی نیست سعی می‌کنه اینا رو پنهان کنه یعنی درسش میذاره در دهنش یه اینجوری که خودش تکم میده اون فکر میکنه منی که استادم نمیفهمم نه نفهمیدم که اون چرت داره میزنه خوابش داره میاد من برمیگردم میگم فلانی این شب خوب نخوابیدی یا امروز رو زور از خواب بیدار شدی یا شب خوب نخوابیدی خب اینو میگم که او بفهمه که شب خوب نخوابیده آه نه اون خودش میدونه اینو میخوام بهش بگم که قایم نکن من فهمیدم تو خوابت میاد نقدر نهز من نومه کر یومم و بکره امروز سود از خواب بیدن شدید یا شب دیر خوابیدید و خیلی از مواقع ما چنین صحبت میکنیم. درست شد اونم میفهمه که من فهمیدم درست شد در واقع به او بگم که فکر نکن من نمیدونم میدونم این مثال اول مثال دوم انت تعملو في حديقتك كل کلی همینی انت تعملو همون فاعل معنوی یعنی جمله فعلیه حساب میشه انت تعملو یه انت رو آورده برای چرا یعنی هست رساله میگم نگاه کنید شما فرض کنید میرید یک نفر رو میارید برای شما کار کنید یک نفری رو میارید که برای شما کار کنید یعنی بیاد از ساعت هشت صبح توی باخشهی که شما دارید تا غروب برای شما کار کنه پول بگیر بعد این آدم میاد هشت صبح میاد لباس شما بشه و های میسر کار کرد غروب هم میاد و پولشو میگیره و میره ولی خودش هم اون طرف یه باخشهی داره مال خودش ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم کار ما پیش نرفته اونطور که این یه روز کامل کار کنه مز بگیره کارمون پیش نرفت بعدم فرض کنید از یه راهی کسی بهمون خبر داده فهمیدیم که این آدم فهمیدیم که این آدم وسط روز در میره میره تو باغچه خودش برای خودش کار میکنه یه و شکل. بر برمیگردیم بهش میگیم انت ت عملو تو به یقین با تاکید بهش میگم ت عملو تو کار میکنی سی حدیقت که کلی اومد در باخچه خودت هر روز تو هر روز میری برای خودت بیل میزنی فکر کلی ما نمیدونی آه این میشه. میشه چرا چون اون فکر میکرد که ما نمیدونیم فکر میکرد نمیدونیم دیگه یا باشه که میکنم ما فهمیدیم میگه فلانی فتحاً و یقیناً تو باخچه خودت و هر روز داری میری سرسامون به دیگار میکنی یعنی چی؟ یعنی من ف ولی اینو نگفتیم که او از اصل این که داره میره تو باغ خودش کار میکنه سود ببره یعنی نسبت به این جاهل خودش انجام داده خودش میرفته این میشه لازم فائده پس ببینید ما این او... نمیشه این دوتا رو حمل کرد بر اون اولی نمیشه حملش کرد بر فائده تول خبر چون به فائده تول خبر نمیشه حمل کرد مخاطب و جاهل فرض کنه به کتاب و به فهمه حملش به لازم فائده وقتی به لازم حمل هم ما دیدیم براطرززن درست و بعدیر که نمesh همین که نتونست حمله بر فایده طول خبر بشه میشه حمله بر لازمه فایده حالا نگاه کنید متن رو تعمل بعد از عالکه المثال اینه عدالیه اینه بعد از عالکه بعد از این که یک و دو رو دیدی تعمل کن المثالین اینه, اینه. دوتا مثال بعدی رو تجد المتكلم لا يغصد ومرهما ان يفيد السامع شيء علم ما تضمنه من الاهكام ميبینی که متکلم قصد نداره از این دو تا مثال به سامه خبر بده چیزی از اون چی که کلام در بر گرفته از احکام نمیخواد بگی که تو زود از کاب بیدار میشی یا نمیخواد بگی تو تو واقعت کار میکنی اینا نمیخواد بهش بفهمی لان مزادکه معلومه للسامع قبلان يعلم هو المتكلم زیرا این برای سامر معلومه قبل از اینکه بهش خبر بده یعلمه ها یعنی یخبره قبل از اینکه بهش بگه او میدونه خودش پس در خبر ممکن نیست و این یوری تو هن یبینه بلکه مقصودش اینه که برای او بیان کنه و آلمون به ما تزمانه هلکرام میخواد بگه من میدونم نسبت به آنچه که تو کلام در برگرفته من میدونم من فکر نکنی من نمیدونم او. که دو دیشب خوب نخوابیدی صبح زود بیدار شدی الان خانت میاد من فهمیدم میخواد بگه فکر نکنی من نمیدونم اوه که در میری میری تو باغ خودت کار میکنی من اینو فهمیدم اینو میخواد بگه فان نمایوری دو انیوبه نه انه عالمون به ما تضمنه کل کرد فسامه پس در این صورت مخاطب فی هاذه الحال در این حالت لم یستفید مندل بالخبر نفسی از خود خبر مخاطب چیزی استفاده نمی کن چون بلد تحصیل حاصل که دیگه غلط نمیشه که چیزی از هم محال تحصیل هست. و انما استفاده اندر متکلمه عالمون به بلکه استفاده اومده که متکلم نسبت به مضمون خبر آگاه و یوسن مازالی که لازمل فایده اینه بهش کفتن لازمه فایده فایده یعنی فایدتون خبر اینجا فایدتون خبر نمیشه ممکن نیست خب لازمش میشه لازمش چیه من وقتی دارم درس میدم بلاغت رو به شما یاد میدم لازمش اینه که خودم بلدم نمیشه که خودم بلد نباشه شما لازمش اینه درست شد مگه میشه کسی بگه و خودش ندانه خب پس برامرین شما از اون استفاده میکنی این تا اینجا دو تا فوائد درست شد غرض متکلم از القای کلام خبری دو تا غرض اصلی و حقیقی اولی بیشتر از دومیه یعنی ذهن اول میره رو اولی نشد میره رو دومی اما گاهی اوقات گاهی اوقات هستش که کلام خبری نه روی یکش میتونه فایده الخبر وایسه نه رو دو میتونه وایسه نیست. اینجا باید نگاه بکنیم به قرائن به قرائن نگاه میکنیم و میره روی معانی مجازی یادتون باشه تو بحث بیان هم با هم خوندیم که مجاز فهمش به قرینه است اینجا با قرینه با متوجه میشیم که منظور از بگید این کلام خبری چیست؟ منظور از این کلام خبری بگید درسته؟ منظور از این کلام خبری معانی متعددی داره. میتونیم تشخیص باز باشه. حالا خوب توجه کنید من یکی یکی برای شما بعضی‌هاشون میگم می‌بینید اینا چیزای نیست که شما به خاطر توجه کنید. خودتون دارید از صبح تا شب با اینا زندگی میکنید صد... از اون صبح که بلام میشید، کلام خبری به دیگران میگید، غرضتون فایده تل خبره، لازمه فایده است. نمیدونه سی اسمشو حالا فهمید نمیدون معانی مجازی الان فرض کنید شما از در خونه میاید بیرون از در خونه میاید بیرون یه نفری میبینید نشسته کنار فیابون نشسته کنار فیابون فرض کنید که با یه هم نشسته که به آدم ساهل میخور نشسته کنار نارفه شما رو میبینیم یا آقا مستجرم گرفتارم پول ندارم بچه یتیم دارم همینطور جمعه این همه جملات خبری مستجرم گرفتارم پول ندارم بچه یتیم دارم همینطور میکنی یه های کلام خبری آیا اینا رو میگه تا شما اینا رو یکی که بفهمید؟ یعنی باید تو جلوش دیگه چی؟ دیگه چی رو من باید متوجه بشنم؟ بفرمایید؟ چشم آه راستی یتیم هم داریم خب یا دیوانه هستیم که؟ مثلا اینا رو نمیگه برای فایدتال خبر که شما بفهم آیا اینها رو میگه برای لازم فایده؟ یعنی میگه که شما بدونید که اون میدونه میدونه دونم فکر نکنید نمیدونه این اینم نیست اصلا لازم فایده امون پس اینا رو برای چی میگه اینا رو داره میگه برای استرهام برای طلب رحمت برای اینکه دل شما بسوزه یه چیزی بشوید تمش اینه قبول نداری اینو حالا این دفعه اولین شخصی که اینطوری دیدی تا گفتش که من بخواد بگه من فقیرم من گرفتارم من مستعجبم تا گفت من بروی پولی بذار تو دستش دیگه اگه بعدش نارو گفت نمیکن استرهام شد دیگه نمیگه نمی شروع میکنه به دعا کردن جمله انشایی میگه خدا حفظت بکنه خدا ان روز بعد براید نیاره و شروع میکنه به دعا کرد پس ما داریم پایی زندگی میکنم خب پس این شد چی؟ بگید استرحام دیدیم بگید نمونه ما میخوام یا خودتون بعدا صد تا مثل اینها رو معانی رو میتونید پیدا کنید. یه نمونه دیگه بگید. فرض کنید که یک نفری تو بیمارستان خدای نکرده شما رفتید ملاقاتش ها شما رو میبینه میگه دیشب چه حالی داشت اصلا نخورد تا صبح مثل کوره میسوختن چند تا به هم سروم زدن هی آمپولم ریختن تو سرومان چند بار دکتر اومد بالای سرم چند بار حالم به هم خورد هی ای نه همه جملات خبری اینان میگه شما باید. آیا اینا رو میگه که شما یکیه که اینا رو بفرمین؟ مثلا تو اگر پیش این بیمار بودی از در اومدی بیرون یه نفر ازت پرسید چی میگفتیم داشت بهت؟ بگی میگه که گفتی شخصا نخبی دارم خیلی تب داشتم این طور این طور این طور شروع کنید نیم ساعتون برای شما گفتن همه به این بگید این رو شروع, شروع نفرمید شما زبط کرد اون از همه این جملات یک خرز داشت این بود من خیلی مریضم یه قاسبه دیگه در ازش این بود حالا این جملات رو مگفت ببینید ما ما داریم به قول خودمون با اینا زندگی میکنیم موارد متعددی هم هست موارده بگید متعددی هم هست مثلا فرض کنید یه نفر وایسادن همه همه وایسادن. تا استاد نام یک نفری رو که قرار مثلا با قول خودمون بدون کنکور وارد فوقالیسانس بشه قبول شده نام اون یه نفر قبولی رو بگه یه اون میگه مثلا حسن فلانی تا میگه این بلند میشه قبول شدم قبول شدم قبول شدم قبول شدم خب این از این قبول شدم قبول شدمش جمالات قبریه منظور چیه؟ اظهار سرور خوشحالی اظهار سرور خوشحالی قصدش دیگه به غرینه اینکه ما میونیم میپره هوا میگه قبول شدم, قبول شدم. وقتی فتح مکه شد پیامبر وارد مکه شد بت‌ها رو می‌زد می‌ریخت و این آیه رو میخون جا الحق و زهق الباطل ان الباطل لا غانزه او جا الحق و زهق الباطل ان الباطل لا غانزه جملات خبری اما اسحال سروره آه. پس بنابر این معانی مجازی و قرینه فهمیده میشه این ما قرینه فهمید بشید فرض کنید شما لفتید و یک دست پارچ و لیوان خیلی گرون قیمت خریدید دارید میارید منم با شما داریم با هم شما این خریدید میخوای بری کادو بدی یا میخوای فلان خیلی هم گرون داریم میارید یه این از دستت میفته زمین میشید میگی شکست میزنی تو سر خودت شکست شکست خب من که بغلت بودم دیدم که افتاد شکست به کی داری میگی شکست این جمله خبری واسه چی میگی برای اظهار نصرت ها؟ حالا من که کنار شما هستم اینو میفهمم با میگم یه ها قصد نخور سرت شکست که شکست خب بس من فهمیدم که این شکست شکست برای اظهار تحصره اون قبول شدن قبول شدن برای اظهار سروره اون من فقیرم مستجرم گدا میگه برای استرهامه پس اینا همه معانی مجازیه فایده تالخبر توش نیست لازم فایده هم نیست میره سراغ معانی مجازی این معانی مجازی را ما با غری نمیفهمیم دیگه در حالا نگاه کنید بیایید بیایید توی قبائده توائدو نگاه کنید عل اسلفه الخبر ان يقول قال احد اصل در خبر اينه که القا بشه بيان بشه براي يكي از اين دو تا قرز اين دو تا قرز قرز اصلي است اولي بيشتر از دو فرق. یک 1 افادته المخاطب على حكم الذي تضمنت به مخاطب مضمون كلامي رو كه جمله در بر گرفته بدیم. افاده كنيم به مخاطب يعني یعنی متكلم افاده کند به مخاطب الحكم الذي اون مزمون کلامی رو که تزمنت خو از جمله تو جمله در برگیرد و یوسم مازالک الحکم و فایده تر خبر اینو بشه میگه فایده تر ب. به افاده تول مخاطب هنر متکلمه آلمان به حکم افاده کنه متکلم به مخاطب که من متکلم آلمه به حکمم و یوسم کل لازم الفایده ته بهش بشه میگه لازمه فایده خب این دوتا قرازه است از حالا قد قد بر سر فیر مزاری یعنی این میشه مرحله مجاز قد یلغا گاهی میشه که بیان میشه الخبند اقراز اخران برای اقراز دیگری غیر از این دوتا که اصلیه اون اقراز دیگه معانی مجازیه توف همومن از سیاق بقلش بنویس و قرائن ال احوال توف همومن از سیاقه و قرائن ال احواله درست شد؟ از سیاق و قرائن احوال ها به واسطه ورینه فهمیده بشه منها مایت بعضیش که یکی میبین الاسترهام اظهار التحسر اظهار زف اظهار مرز مثل اون که من گفتم فخر الهست و الهست و جد. تشویق ور. سی ج دیدید یه چاین نشید یه نفرتون مجلس نشسته من این قدر پول دارم من اینقدر کردم من فلانی رو کردم من این کار کردم این کارکن کردم همطور حرف ر شما میای بیرون یه نفر نهفرد میپرسه که چی می گفتین؟ گواهسا چی می گفت این شروع کن یکی یکی یکی یکی, یکی این رو چی چی اینا, که اینا رو گفتن م تو ضبط تو چی چی اون نگفته اینهایی که تو اینارری یاد بگیری یا نگفته که بگه که من اینا رو میدونم اون اینا رو گفت واسه داشت پوز میداد حالا تو اگه از در اتاق اومدی برویم به تو این چی میگفتاش توبت میکرد ببا بایید چینش از صورت پوز میداد پس معروف رو فهمید از اصلا این نیست که این جملات رو شما یاد بگیرید از اینه که شما بگید فخر فروشی او رو قبول کنی، فخر و معانی مجازی دیگری هم هست چه شما در سیاق و مطالبی که هست میفهمین؟ درست شد؟ نگاه کنید حالا چند تا مثال برای معانی مجازی شما بوده از پنج شما میشه اولیش قال یهیاء البرمکی برمکی های تایفه ایرانی بودند در کنار خلافای عباسی معمون و حارون و اینها و خیلی هم به قول خودمون اونها رو هم تقریبا اونا بیارزگیشون و با یه مقدار حوش و درایت اینها پر کرده بودن و خیلی هم نسبت به علویین آدم سالمی نبودن. امام رزا رو هم اینها به شهادت در واقع با تشویره که کردن در و اینها. میگه این بعدم حالا جالبه این برمکی ها همشون به دست همین ها از پادر اومدن همشون ها. یعنی از در آقابت رو به شرشون به قول خودمون شدن به همه گرفت حالا این یهی برمکی حارون و رشید رو مورد خطاب قرار ده یهی برمکی حارون و رشید رو مورد خطاب قرار ده حارون رشید انداخته بزدش تو زندان حارون رشید از زندان خودش خبر داشته یا نه؟ بل اینم که انداخته بوده تو زندان میدونسته که خودش گفته اینو بندازید زندان یا نه؟ بل همینال هم میدونسته نگه یحیای برمکی گفته یخات با الخلیفت الرشید رشید مورد خطاب قرار داده خلیفه حارون رشید رو و اینطور گفته خب چی گفته؟ پایین نگاه کنید یحییای برمکی رو میگه الفی الخراج و الغنیمه اینا رو معنا کردی روش شد خراج یعنی مالیات و غنیمتی که میگرفتن یه درهم هم برای خودش بر نمیداشت یهی یحیای برمکی رو ببین چی میگه خوبه عبالفض یحیی بنو خالد ابن برمک وزیر و حاروم از رشد. وزیر قارون رشید کان کاتباً بلیغا سای برگ میگه نظراتو درستی میداده بلیغ بوده نویسنده بوده حسنت تدبیر تدبیرات و امور رو میکرده تو برای اونا داره میگی دیگه یوغار رو وجودا مثل باد کرم وجود میکرده به سرعت با باق مسابقه میداده داده در کرمه سجن افو حارون و رشید اینه تغییر علال برامه کرد و رشید که قذب کرد بر مرمانه که اون انداخت زندان و بقیه فیسجنهی حتی مات در زندان موند تا مرد سند میعتن و تسک. سال سال نود خب این آقای یهی برمکی تو زندان نوشته برای حال اومد میگه انل برامکت جمله خبریه یه سوال انل برامکت برامک جمع برمکی هست پس منوشه همه یه برمکی هایی که تو زندان بودن حال اونا بداره میکرد انل برامکت این برمکی ها اللذین هست صفت برامکست. کسانی که رومو رومو یعنی اصیب و دوچار شدند روم و به داهیتن میگه این برمکی هایی که دچار شدند در نزد تو به مسیبتی از این داهیتن نکرست دلالتت هزیم گفت این برمکی هایی که دچار شدند به بدبختی بزرگی در دولت تو در پیشگاه تو خبر نینه صفر الوجو صفر جمع اصفره صورت هاشون زرده صورتشون زرده کنایه از چیه؟ یعنی حال خوشی بگید ندارن رنگشون زرده صفرالوجود کنایه صفت دیگه یعنی حال خوبی نداره علیهم خلع المزلته بادیتون خلع المزلته مبتدا بادیتون تدارش علیهم متعلق به بادیه خلع جمع خلعته خلعت یعنی لباس لباس های زلت لباس های خاری بادیتون ظاهرتون علیهم لباس زلت به تن اینها آشکاره ظاهره لباس زلت رو میشه تنشون دید این جمله اسمیه که علیه متعلق به بادیتون خیل اول مذلت بادیه خبر دوم این است این یک کلام تا بیتش که برمکی هایی که بدبخ شدند در حکومت تو اینها رنگی پریده دارند حالی ناخوش دارند و لباس ضلت بر تن اینها آشکار است لباس زلت و لباس زندان بر تن اینها آشکار است خوب درست شد خلع المزلت علیهم بادیتون بادیتون آیا قصدش بوده که اینا رو بگید تا حالون رشید بدونه خواهرش این رو یا این فکر کرده حالون رشید فکر می کنه این رو نمی رو یه یه وقتی نمی دونه که هرون رشید بدونه که این میدونه که حال حوضرش این رو نیست که نفایده تو قبول نالازم دونه این رو گفته تا یک بگید استرحامی بشه ترخو می بشه از حالون رشید و یه لطفی بهش بکنه حالو پایین نگاه کن حالون الرشید رو چی میگه خب اهد الخلفای لباسیین المشهورین بالفضل و الفصاهت و بالکرم خب تو اینا همه دروغه کان یوهب و شعراء و یمیل و الى اهل العدب و الفقه شعراء رو دوست داشته و تمایل به اهل ادب و فقه داشته. بوی عبل خلافته بیعت شده با او به خلافت سنت معتن و تسین سال سده هفتاد و توفیه به توس و بعد هم در توس به خاک سپرده شده سنت معتن و تسین و سنید و سنید معتن و سنید میعتن و سنید و, و تسئین سال سده نفت و دو خب اینم مالید الخلع جمع خلعته الملابس یقولو ان ملابس از ظله ظاهرتان بادیتان علیهم لباس های زلت بر تن اونها آشکار است. خوب گرینه که دیگه مشخصه دیگه این آقا تو زندان بوده از تو زندان این شهر رو نوشته فرستاده قصدش این بوده که به آی حالون رشید بگه خب نه دیگه آراش روش می دوست. قصدش این بوده و حالون رشید بعدم زندانی بوده و حالوزای بدی هم داشته و اینو گفته آه. از توش التماس و التجاو و اینها درده که بابا اینا بدبختند هم یه لباس زلت به تر رو ندارم می چارند. این نشون که تخام. نگاه کوین الان خودش توضیح میده دقت کنی میگه آنسلله ن همسللت ال خ تا مثال های پنجگانه بعد تجد انل متیکل مفی کل من حال لا یخز دو فاعد تل خبر و لا لازم الفاید نه اون خبر و قصد داره نه لازم میفاد و ایننمما یخز دو اوخ را. بلکه قصدش چیزهای دیگریه یستطلعها که میفهمه انها رو اللبیب آدم عاقل و یلمه ها و درک میکنه انها رو منسیاغ کردن از سیاغ کلام و قریده درست شد؟ فیه یا البرمکی فی المثال الخامس پس یه برمکی در مثال پنجم لا و عن به عرشید قصد نداره خبر بده با هارون الرشید رشید به ما وصل الیه قال و حال و زوی قربا من از زل و سغار سوار یعنی خاری نمیخواد خبر بده با هارون رشید به آنچه که رسیده است به آن حال خودش و حال و فیشاوندانش برمکیهای دیگه از زلت و خاری نمیخواد اینو بگه به اون چرا نمیخواد بگه لان الرشید رشید هو و را بهی و همه اولا علمه. چون حارون الرشید خودش این دستور داده بود خودش زندانش رو میشناخته از هم, هم بهتر میتونسته ولا یرید کذالک ان یفید خود و همچنین قص نداره که به او بفهمونه انه عالمون به حال نفسهی و از قرار قرابت که بگه ای هارون رشید فکر نکنیم ما نمیدونیم تو چه حالی هستی ما, ما میدونیم تو چه حالی هستی میره میخاست رو پس برای چی بوده این نمای از تعطفه و یسترهم رج طلب اوطوفت و رحمت می‌کرده باید و یرجو شفقت او شفقه یعنی دلسوزی و امید داشته به اینکه دل او بسوزه عسا ان یسقی علیه به امید اینکه یسقی یعنی یستمع اینکه گوش کنه به حرف این درست شد فیعود الابر و العدل بعد دوباره برگرده به همون نیکی و عطوفتی که قبلا داشت خواسته رو نرم کنه برگرده بیاد مخواسته این رو به نوعی عطوفتش رو جلب کنه رحمتش رو جلب کنه تا شاید دلش بسوزه و اینها رو بگید ببخشه و دوباره برگرده نسجن خب این تمام شد حالا نگاه کنید مثال بعدی کلام خداست قال الله تعالی خداوند تعالی فرموده حکایتاً از زکریه علیه السلام داشته حکایت میکرده در حالی که حکایت میکرده از زکریه های پیامبر پیانبر, پیانبر زکریه تو سن 120 سالگی احساس کرد داره از دنیا میره و کسی نیستش که ادامه دهنده راهش باشه از خدا درخواست فرزند کرد که خدا یه فرزندی به من بده و من اون رو تربیت کنم دین تو رو پا کن. خدا هم استجابت کرد در سن پیری به او فرزندی داد و یحیی. حالا گوش کنید او برمیگرده به خدا این طور عرض میکنه زکریا ربه یعنی یا ربی ای پروردگار من انی و هنل از ممنی. خدایا وهن العظم و ملنی. تمام استخانها العظم علفلامش علفلام عهده یعنی علفلام جنسه استقراقه مثل این انسان یعنی تمام استخوانهای من سست شده وهن. وشته علا و شیبا از رأس عهد تعریفه یعنی این سربه. و این سر منم شعله کشیده از جهت پیری قصدش از این چی بوده؟ خدا یا تمام و استخونه هم پوک شده, شده. و استخونه هم وقتی پوک بشه دیگه گوشت و خون و چربی دیگه مرخصه بعد هم میگه سرم کاملا سفید شده شعاله کشیده از جهت سفیدی قصدش از این ها چیه؟ از این کلماتی که بفتن یعنی خدا یا همه و استخونه پوک شده سرمون هم سفید شده منظور یعنی کبر تو اظهار پیریه حالا اگر یک نفر بیاد از ما سؤال کنه که زکریا به خدا چه ارز کرد؟ میگه ارز کرد که خداوند خیلی پیر شده اینو گفتیم فهمیدیم کار چیه این آیه رو ما توی قسمت بیان توی ترم قبلمون خوندیم و من توضیحات اونجا رو هم خدمتتون دادم همین مطالبی که الان با هم بیان کردیم اونجا توی اشتعال رس و شیبا که استعال مکنیگه درست کردیم که میگه تشبیه شده به وقود وقود هست شده اشتعال که خصوصیاتش خصوصیاتشه برای رس ثابت شد. حالا نراه کنید توی متنیشون در فلم سال سادسه یس و زکریا علیه السلام حاله بود و یوزه رو او و نفاد نفده یعنی تمام شد نفاد مسترش یعنی تمام و نفا یوزه رو او و نفاده قوتهی و این که قوتش تمام شد قصدش اظهار پیری بود اظهار ضعف بود خب بریم سال هفتمی قال اهدالعراب یرسی ولده عرب جمع اعرابیه یعنی عرب بادیه نشین یکی از اعراب بادیه نشین این رو گفته یرسی ولده بود داشته مرسیه می کرده فرزند خودش یرسی ولده پس فهمیدیم که این کلام در چه خصوصی گفته شده شخصی بادیه نشین این رو در مرسیه و از دست دادن بچه خودش گفته خب ببین چی میگه میگه لما دعوتو سبر بعدک ولعصا عجابه اون تو فیل شد عجابه جواب شد برای لما عجاب ولعصا تو اند ولم یجب صبرو. میگه لما وقتی دعاوت و صبره. فرا خواندم صبر خودم را بعد از که بعد از مردن تو ولعسا و زاری و گریه و آه و اندوه رو میگه بعد از تو من فرا خواندم صبر و شکیبایی و دندون رو جگر گذاشتن رو و همچنین بگید آهو و حسرت و ناله و ندور. ناله لهو جزاء کردم رو. یعنی من دو راه داشتم بعد از تو یک اینکه صبر کنم، ندور دیگر جیگر بذارم، یکم تو سری کله خودم بزنم آقا حسرت. هر دو رو تجربه کردم، صدا کردم. چی شد؟ عجاب ولا صبر و اندور پاسخ مثبت داره. چیست؟ جزا و فضع کردن تو سر کلی خود زدن عصا اندوه خزن به من پاسخ مثبت داد توعا با کمال میل این توعا است یعنی طاعن این کاملا پذیرفته شد و جواب مثبت داد و من یجب صبر اما صبر به من پاسخ مثبت نداد یعنی پسرم بعد از تو من دو راه داشتم صبر و شکیبایی جزا و فزع هر دو رو صدا کردم اما چه کنم جزا و فضع کاملا پاسخ داد اما صبر نیامد وسط و پاسخ نداد. یعنی نتونستم سرف سرف کنم الاسا الخوز پای حالا بچی میگه میگه فعین ین قطع من کر رجا پس اگر من قطع شده بریده شده از تو امید من رجا یعنی رجایی اگر امید من از تو منقطعه شده یعنی امیدی ندارم دیگه تو رو ببینم مگر در اون دنیا. اب نداره فإنهو فا جزایش فإنهو فا سیبقا علیک الحزن و ما بقیت ده پس همانا سیبقا علیک الحزن کی فنهو ها زمیر شنه پس سیاب سیبقا علیک الحزن حزن اندوه من بر تو باقی میمونه ما وقی در مای ی مادری ظرفی است یعنی مدته بقای در تا دنیا دنیاست تا زندان وزنده برای تو داره خب قصدش از اینا چی بود اینا رو گفت که مثلا پسرایی که مخاطب بشه بفهمون که مردو بوده قصدش این بوده که اینا رو گفته که به اون بگه که بدون من اینا رو میدون اینم نیست قصدش اظهار تهسل دیگه یعنی موقع که این شعر رو میف با انوه میخونده لا ماده اوت بعد بعدا کمل عصا تو بالا عصا توبان این داشته با و اینکه نالو و, و, و جریین رو میخونده و ان انوت امکر لاجا و انه سیب غا هنکای حزن و درست شد پس چی از این اظهار بگید اظهار تحسره اظهار تحسر میکنه حسرت خودش بود قال عبلون رو کلسوم قال امروبنو کلسومن این کلسوم اینجا باید کلسومن بخونیم غیر منصرف نیست اسم مهندنس پدرشه کلسوم دوست شد امروبنو کلسومن میگه حقا عبل اسود امروبنو کلسومن یامتهي نسبه الا تقلب از قبیله تغلب و او صاحب المعلقه لتی مطلعها علی حبی به که کفس بهین و لا طبق خمور اندرین و و یکی از معلقات به نام تو معلقه در قوم خودش میگه میگه ازا بلقل فتام لنا سبیگون تخیر رو لحل جواب رو ساجدین ساجدی نبوده شده ساجدین ازا بلقل فتام فتام فتمه یعنی از شیر گرفت فتام یعنی از شیر گرفتن بچه بچه به سن دو سالیگی که میرسه از شیر میگیرنش میگه ازا بلقل فتامه زمانی که ز... شیر از شیر گرفتن برسه لنا سبیگون برای ما پسر بچه یعنی پسر بچه از ما اگر به سن دو سالگی برسه و از شیر بگیرنش چی میشه؟ تخر رو لهو خرر یعنی به زمین افتاد تخر رو لهو به خاطر او به خاک میفتن الجبابر تمام جباران تمام پادشاهان قلدران تمام قلدرها برای او به خاطر او به خاک میفتن ساجدین همه سجد همه در مقابل او لانگ میدازن و همه در مقابل او متواضع میشه میگه اگر یه بچه ای از ما به سنی برسه که دیگه دهنش بوشیر نده دهنش دیگه بوشیر نمیده و از شیر بگیرنش این تخیر رو لحل جواب رو ساجدین و همه جباران عالم در مقابلش میفتن به خاک آیا قصدش اینه که این رو میگفته توی اون عبیاتش برای که به ما خبر بده نه قصدش این بوده بگه که من خودم دونم نه قصدش فخره داره فرق فروشی میگه پوز میده برای همین مبالغه کرد مبالغه هستی که بچه دو ساله تمام پهلوانان عالم در مقابلش به خاک میگفتن قصدش فخره یعنی قصد این شاعر از بیان این بعد اینکه من یاد بگیرم نیست اینکه بگه من خودم اینو میدونم نیست قستش فخره در مقابل پادشاه زمان خودش امر بن هند داشته به قبیله خودش فخر میکرد ازابل اول فتا وملر اسبیون تخرل له الجواب رساجدین قستش فخر حالا نگاه کنید تو قسمت بحث میگه و مثال سال سادسه یصف و زکریه علیه السلام حال هون و یوظه رو و نفاد غموته که گفتیم اینو ولعرابی فلم سال ساده یته هسته رو داره آهناله میکنه و یوظه رو لعصا و هزن و یوظه رو و وله هزن علا فقد ولدهی و فلزت کبدهی داشته اظهار اوزن و, و اندوه میکرده در از دست دادن بچهش و پارهی جگرش که از دست داری و امروز ما کنسومن فیلم مثال سامن یفخر و به قومی و یوباهی یوباهی یعنی فخر میکنه پوز میده به ما لهم منال بعثه و به آنچه که اونها داشتند از قوت و توان داشته پوزشو میداده. قصدش فخره نوها نگاه کنیم نو نو حالا من این نه رو به گنه برای شما میگم وقتی که شما این مثال منو بفهمید اینم داره همین کاره میکنه. فرض کنید یک نفری به بچه خودش درست شد که میخواددم سالم تاان کنکور بده اینطوری میگیر. میگه پس انجام اگر کسی بخواد کنکور قبول بشه ها؟ این آدم باید یه مقدار خواب و خوراک رو کنار بگذاره این آدم باید برنامه ریزی داشته باشه یه ساعت محینی رو بشینه پای کتاب این آدم باید ارتباطات خودش رو با نمیدونم وسایل ارتباط جمعی کم کنه این آدم باید خواب خوبی داشته باشه باید به کتاب قبلش مراجعه کنه این آخریه می درست شد قصدش از اینها این نیست که اون اینا رو یاد بگیره اون اینا رو میدونه قصدش همین این نیست که بگه من باباد اینا رو به قول خودمون بلدم قصدش اینی که اونو تشویق کنه که کسی که میخواد قبوشه این کارا رو میکنه این نوع درس میخونه تمرین میکنه این هم داره همین شکل میگه نگاه کنید قدیم قدیم اینطوری بود یه نفری که مسئولیت امارت و خلافت داشت درامدش این نبود که مثلا سادرات داشته باشه نفت و نمرنب چی و غیر و ها؟ بلکه درآمدش ما فقط از مالیات بود و اون چه که از مردم به عنوان مالیات میگرفتند با همون اداره پس بنابراین اگر یه حکومتی توانست مالیات خوب جمع بکنه این دستش خالی میموند. نمیتونه از اوان و انصارو کارمندان خودش رو اداره کنه. خب. پس حکومت محتاج به مالیات مردم بود. حالا. این آدمی که بالا دسته. یعنی خلیفه است. به اون کسی که گذاشته بوده توی شهری و زیر دستش بوده. به اون میگه که فلانی آدمی که محتاجه آه شب نمیتونه بگیره بخوابه خواب راحت. خوابش نمیبره چون نیازمنده. این آدمی که میگیره شب سراشو میذاره و راحت میخوابه بیخیاله اونیه که هیچ گونه حاجت و احتیاجی نداره. کارشو راه انداخت مثل اینکه اون کسی برگرده بگه بابا کسی که کنکور داره وش سرنوشتش به اون بستگی داره که نمیتونه راحت بازی کنه و شبم بگیره بخوابه. این شب خوابیدن و راحت بازی کردن مال اون کسی که وظیفهش انجام داده این با این جملات داره تشویق میکنه به او رو به این مطلب حالا نگاه کنید کتب تاهر ابن حسین تاهر ابن اون نفر بالاییه بروش بالا دسته پایین نگاه کنید هو عبود طیب تاهر ابن حسین من کبار الوزراء عدبن و حکمتن و شجاعتن و هو ول لذیفه ت德尔 ملکه لمعامله الاباسی اون کسیه که زمین سازی کرد فلسفات رو برای معامله الاباسی و توافقی به مدنیت مرو سنت سابع سابعین و معاتینه دیوسته هست این آواهی تاهر بنهوسی نوشته اینال ابباسی بنموسو الهادی به ابباسی بنموسو الهادی که زیر دست مثلا اون آقا بالا بوده این فرض کنید که حاکم یک شهری بوده که بعد مالیات رو جمع میکرده. خب این چیه حوث سالس و عبناه موسا الهادی الخریفت العباسی رابه کان عاملا الالکوفت والی کوفه بوده من قبل العمین و توفی سند معتن و سهتن و تسکی سال ۹ ۱۹ چه دنیا رفته؟ پس این آقا داره به این می به موساه هادی فقط این واب, واب حالی است و حالان که استبت استبته یعنی ده و کن ها یکی از معانی باب استفعال به معنای به حساب آوردن مثل استحسنه هو، استحص هو یعنی عده و اونو قشنگ یافت استقبحه او ها. یعنی عده او قبیح شمرده قبیح و حالا آنکه استبطعه او او رو کند شمرده بوده فی خراج ناهیته در مالیاتی که از ناهیه او باید میامده اونو کند شمرده براش اینو نوشته اینو نوشته که او رو تشویق کنه دیگه بده چی آدم بیخیال میگیره میخوابه آدمی که نیازمنده که خواب نباید داشته باشه تو بیخیالی رو بذاری کنار مالیات کن این چیزیه که میگه لیس اخول حاجات نیست آدم حاجتمند من با تنائما کسی که بگیره شب تا صبح بخوابه آدم حاجتمند که نمتونه شب تا صبح بخوابه اخو اخوها آدم حاجتمند شب نمیخوابه پس چی؟ ولی اخوها آدم حاجتمند من یبی تو علا وجلی یبیتو تو فیل آورده کسیه که یبیتو تو علاقه جلن هر شب بهی میکنه هر شب رو به صبح میاره علاقه جلن با استراب و استرس و دلخوره که آیا مشکل من حل میشه یا نه خواب به چشمش نمیره آدمی که حیثیتش به مالیات بستگی داره که نمیتونه بگیر شب بخوابه. از خواب به چشمش نمیره که ببینه آیا میتونه وظیفه خودش انجام بدهن چرا گرفتی خوابیدی؟ چرا نمی بودو؟ بودو از این جمله برای خاطر تشویق نگاه کنید میگه و تاهر ابنال حسین فیلم سال الاخیر در مثال آخر لایقص دار اخباره هو و نهو یه حس و آملهو بلکه آمل خودش تو یه حس و یه شوق و یه تشویق میکنه علن نشاط و جد بر نشاط و فعالیت و جدیت فی جوایت الخراج فی جوایت الخراج جوای جوایج یعنی جمع کردن اما جمع کردن مسائل مالی آه اینو میگن جوایج یعنی جمع کرد حالا جوایت جوایت خراج یعنی جمع کردن مالیات میگه و جمعی و حاضر اقراز الاخیده این همه این مثال های آخر این نما توفه همون سیاق کلام از سیاق کلام فهمیده میشه و وراین الاحوال نام اصل وضعی از اصل نیست ها اصل وضع فقط برای فایده تو الخبر و لازمون فایده اینو از سیاق خان. آیا فقط هم نه مثلا اون کسی که میگم قبول شدم قبول شدم میپرید هوا مثل جا الحق و زهق الواتر ما گودیم برای از سروره درست شده نه؟ اوقات ما یه سری جملاتی رو به یه نفر میگیم برای که خجالت بکشه قصد ما خجالت دادنشه نمیخوایم خبر رو بهش بگیم نمیخوایم لازمه فایده بهش بگیم اونم هم روزه پایین ما خجالت بکشه قصد ما اینه تو این کاری کردی تو این کاری کردی تو این کاری کردی هبش خبر میدیم یعنی بگیم ما میدونیم من میدونم من میدونم هم میدونه می می خودش میگیم به روش میاریم تا خجالت بکشه میگیم به روش میاره تا خجالت بشه پس بنابرین اقراض مجازی تعدادش یکی دو تا سه تا نیست بستگی و قرض داره ها و قرینه ای که تو کلاپ در اینها باعث میشه که شما به قول خودمون این مبحث رو بکن. الان توی ها نگاه کنید شما دل. نموزش ها مثلا نمونه اول نگاه کنید میگه کان معاویتو معاویه معاویتو ابن عبی سفیان میگه کان معاویتو حسن از سیاست و تدویر معاویه میگه سیاست خوبی داشته تدویر و رو خوب میکرد حالا این میکرد خب چکار میکرده یحل و مفی مواز الهلم در مواضع حلم جایی که باید حلیم بوده علم خرج میداده و یشتد دو فی مواضع شدت و سختم میگرفت جایی که باید سخت بگیره این کاملا دروغه حضرت معدی رو همین معاویه به شهادت رسوند میگه کان معاویه تو این معاویه حسن از سیاست و تطویر خب اینو داریم میگه میگه که مثلا ما بدونیم آه. ما وهمیدیم قبولم نکردیم پس اینالی برای فایده تل خبر گفته دیگه قصدش فایده تل خبری الگرز فایده طول مخاطب الگرزی من طول مخاطب شد یه نفری یه نفری میبینیم بچه هاش خیلی بهش احترام میگذرند خیلی دوستش دارند آه. و واقعا با بچه هاش رفیقه بچه هاش هم مثل شم دورو می برمیگردیم ما فهمیدیم در مثلا حالا بررسی کردیم متوجه شدیم که این خیلی با بچه های خودش رفیقه و اونها رو به قول خودمون با جونم و عمرم بزرگ میکنه این همه اینا بهش احترام می به خاطر چک و لقد نبوده که زده برمیگردیم بهش میگیم ما اینو فهمیدیم نقدر تا بنیک تو فرزندان خودت رو عدب کردی بلین و رفع با نرمی و جانم و عمرم رفاقت لا بلقصوت و عقاب نه با سنگدلی و تنبیه کردن عقاب میگیم تو اینا رو با جونم و بزرگ کردی ما میدونیم نه با چک و لقد خب میشه چی؟ میشه لازمه؟ بگی فایده از او؟ افادت المخاطب ان المتكلم عالم به حال هیفی بنی بنید سه رو ببین توفیه عمر بن الخطاب خلیفه دوم از دنیا رفت سنت سلاس و عشری هجره سال 13 همه هجری توفیه عمر بن الخطاب سنت سلاس و عشری نمند هجرته سال 23 هجری خب اینو گفت ما فهمی که که سال 23 هجری ها خلیفه دوم خب نمی دونستیم گفت یاد گرفتیم میشه فاعدتال خبر الغر از افادتال مخاطب الحکم اللذی تزمنه خود کلا مثال های چهارم به بعد بماند که یه مقدار درسه ما اول جلسه بعد تکرار بشه بعد انشالله درس بعد درس بعدمون موفق و مجید باشید در پناه خداوند صحیح و سالم و موفق باشید والسلام علیکم و رحمت الله و برکم.